این داستانک فقر و فروتنی آدم را به بهشت میبرد. یکی بود یکی نبود. زیر گنبد آبی آسمون شاه بود که غمگین و ناراحت برای قدم زدن به کشزارهای اطراف رفت. نگاهی به آسمان آبی و زیبا انداخت. آهی کشید و گفت چقدر رونائی که تو بهشت هستن باید آدمای خوشبختی باشند درست در همون لحظه مردی کهنسال رو دید که موهای خاکستری داشت و از همون راه میگذشت پسر پادشاه از او پرسید که چگونه میتوان به بهشت رفت پیرمرد جواب داد با فروتنی و فقر لباسهای کهنه مرا بتن کن و هفت سال تمام همه جای دنیا را بگرد و بیچاره ها را ببین. پولی به همراه نبر. هر وقت گرسنه شدی، گدایی کن و از مردم نیکوکار بخواه. تکهای نان به تو بدهند. با این روش به تدریج به دروازه بهشت نزدیک خواهی شد. شاهزاده این نصایح را شنید. لباس فاخر و درباری خودشو در ورد، لباس ژنده گدایی پوشید و به دیدن دنیا رفت. و دشواری های زیادی رو تحمل کرد. او غذای مختصری میخورد کلامی به زبان نمیآورد و هر روز با راز و نیاز از خداوند میخواست که اونو به سوی بهشت راهنمایی کنه. وقتی هفت سال سپری شد شاهزاده به خانه پدریش برگشت. ولی کسی اونو نشناخت. او به خدمتکاران گفت برن و به پادشاه بگن که پسرش برگشته. ولی خدمتکاران بیان که حرفش باور کنند فقط بهش خندیدند. بعد از خدمتکاران خواست که قضیه رو به برادرانش بگن و گفت شاید اونها به دیدن من بیان. من باید بعد از این مدت طولانی اونها رو ببینم. در این میون یکی از خدمتکاران رفت و به فرزندان پادشاه خبر داد که شاهزاده بازگشته. ولی اونها سخن اونو جدی نگرفتند. سپس شاهزاده نامهای به مادرش نوشت و همه گرفتاری هایی رو که طی سالها تحمل کرده بود براش شهر داد ولی نگفت که فرزند اوست دل ملکه برای شاهزاده سوخت و دستور داد زیر پله ها جای جایی بهش بدند دو خدمتکار هم معمور شدند هر روز بهش غذا بدند یکی از خدمتکارها که آدمی نادرست بود به خودش گفت گیدارو چه به غذای خوب خوردن؟ او غذای خوب را برای خودش نگه می‌داشت یا به سک ها میداد و برای شاهزاده نیمه گرسنه فقط آب میبرد. خدمتکار دیگه آدمی درستکار بود و هر غذایی رو بهش میدادند نزد شاهزاده ساده این مقدار غذا اندک بود ولی شاهزاده رو برای مدتی زنده نگه داشت. شاهزاده با همان مقدار کم غذا احساس رضایت می کرد. هر چند روز به روز ضعیفتر میشد. بالاخره هم از شدت ضعف مریض شد. وقتی بیماریش به اوج رسید تقاضا کرد آخرین مناسک مذهبی رو براش اجرا کنند. مراسم شروع شد و ناقوس کلیسا در همان شهر و مناطق اطراف به صدا درآمد. مراسم که تموم شد کشیش برای دیدن گدای بیچاره رفت و اونو در حالی دید که در دستی یک گل روز و در دست دیگر یک گل زنبغ داشت. و از دنیا رفته بود، در کنار جسد شاهزاده کاغذی به چشم میخورد که شرح حالش قرار نوشته شده بود. شاهزاده را به خاک سپردند، در یک سوی مزار او گل روز روید و در طرف دیگر گل زنبق. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه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 ادساین مهران دوستی